عوالِ الله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلَّ الله و علَى سيدنا رسول الله وآلِه الطيبين القاهرين المعصومين تبارك و تعالى اجمعين الله مافعنا جميع المشتغلين رحمنا و رحمتك يا رحمنا بحثی که بود به این بود که این که مشهور شده بین اصحاب ما که شهرت جابر یا کاسره این مدناش چیه به چه اساسیه متعرض شدیم چون مرحوم استاد در اینجا بارد به این بحث و و خب که از مباحثیست که الان در دنیای معاصر شیعه در های شیعه خیلی محل کلامه متعرض این کلام شدیم و مطالبی رو که مظموم استاد خون... فرمونده هم خوندیم حالا مگر ایشون از آیه نایلی نهر بکنن مگر جایی دو ده باشن و الا زواهر هم اونطور نیست که ایشون فرمونده به نظر ما این جهت مطلب رو یه توضیح رو ارز کردیم توضیح اینجا رسید که مرهوم علامه در حقیقت اولین فقیه از, از خواه های شیعه که مسئله بحث سندی و خبر صحیح یا حسن رو هم در فقه تطبیق کردن یعنی هم کبراش رو در اصول آوردن و هم در فقه تطبیق کردن و در رجال هم تطبیق کردن طبیعتا مشکلی که اینجا ایجاد کرد این بود که خیلی از مسائل رو که ایشون مثلا روایات رو که ایشون زعیف میدونستن اصحاب عمل کرده بودن و خیلی از روایاتی رو که طبقه مثلا نظر ایشان صحیح بود از عمل نکردن این یه مشکلی رو ایجاد کرد ابتد این مشکل رو کردم دیروز که قبل از خود علامه دایی ایشان رضوان الله تعالی علیه در کتاب در کتاب هاشون من کتاب معتبر خود ایشان این مسلک رو نداشتن مسلک علامه رو به اصولت اشاره هم کردن به این مسئله حتی بیشون فرمودن که ادهی از علما فقط در سند حساب میکنن اونی که سلیم و سند باشه و بله فقال کل سلیم سند یعمل و به این سلیم و سند رو لکه خود ایشان اشکال میکنن که این مطلب درست نیست در صفحه 6 این چاپ قدیم معتبر زهانا چاپ جدیدی هم داشته باشه که من نداشتم لذا خود ایشان مبناشون اینه مبنای خود ایشان بله رضوان الله تعالی علیه ما قبل افل اصحاب او دلت القرار اینا علا صحته ایشون نظرشون اینه عمل لبه و ما اعرز الاسخابان و او شده یجب تراهو این مبنای ایشان به نظر ما میاد که بعدها بعد از علامه در این تاروزی که بین مثلا این عرضیابی جدید این تقیید به اصطلاف قدر این عرضیابی جدیدی که شد با عمل اصحاب بیشتر اصحاب به دنبال کلام محقق رفتن دایی ایشان همین کلام البته میشه اینجور گفت خود مرحوم محقق ظاهر عباردش این است که اصل در حجیت و برقرائن میدونه اونه که حجت به نظر ایشان قرائه خبری که صحیح هم باشه مطابقش باشه این رو معکل میزونه ظاهره باره خوندید بروز رو بارتیشون دیگه تکرار نیم خیمه. اما اصحاب متاخره از ایشان ظاهرشون این نیست ظاهرشون اینه که خبر صحیح رو به اصطلاح خبر ضعیف رو قبول میکنن لیکن شون زعت صند داره با قرائه من جمله عمل اصحاب یکی از قرائن مهمه اون ضعف رو جبران میکنه و لذا ظاهرش اینه که خود خبر ضعیف به خاطر عمل حجت میشه و در نتیجه خبر ضعیف مؤكد نیست یا خبر صحیح مثلا با ترویجش نه مؤكد نیست بلکه اون خبر ضعیف تقویت میشه حجت میشه نتیجهش این میشه میشه حجت لفظی این لفظی و الا اگر قرائن باشه قرائن خود به خود در این لبیه ولی ایشون ظاهر عبارتش اینه اون که که اصحابی ما بعد بیشتر دارن اینه به هر حال احتمال میدیم احتمالی که ما میدیم یکی از نکاتی که منشع شده اصحاب متاخر ما بعد از علامه در مقابل این مطلبی که ایشون گفتن موضع بگیرن همین کلمات دایی ایشان بوده که مثلا سرشین باشه و طبعا ایشان رحمه الله دیگه دنبال اون بحث هایی که بعد با عنوان سند مفرحه نرفتن حالا من یک نمونم اون کلی کلامیشون رو براتون خوندم یه نمونم تطبیقی میخونم که نحوه کار ایشان روشن بشه در صفحه 23 در باب مسئله صور بله دو تا روایت نقل میکنه یک روایت علی بن عبی حمزه چون نمخواب بحث فرقیش بشن یکی هم روایت امار ساباتی بعد لایوغال دقیقه بکنید وقت کیفیت استثاریشان. لا لایوغال علی بن عبی حمزه این خب قلط چاپیست دیگه علی بن عبی حمزه علی بن عبی حمزه واقفی و امار فتحی یون یا فتحی یون چون زفت این کلمه هنوز بر من دوشن فتحیون فلا یعمل به روایت ما ببینید این همون بحث خبر فاسق و این ها چون رو سو مثلا فاسد لعنان نقول جوابیش الوجه الذی لعجلهی عمله به روایت سقه قبول و لعصحا قبول داردو عمده قبول لعصحا امن زمامل قرینه یعنی ما به خبر به عنوان خبر عمل نمی کنیم. یا قبول یا زمینه مراد از قرینه مجموعه شواهد کتاب سنت شواهد قبول بین طاقفه تاریخش مثلا شواهد مختلف همین زمام القرینه لَأَنَّهُ لَوْلَا ظَالِك لَمَنَ عَلَعَقْلُو مِنَ لَعَمَلِ به خبر سقه حالا این رو بگیریم با کلام و استاد که اغلایی خبر سقه سیر و, و اغلا قائمه از کردم احتمال ما منصفانه باید بگیم که گروه از اوغلا عمل میکنه گروه امن نمی کردن عمل میکنن نمیشه بگیم کسانی که عمل میکنن از اوغلا خارجن کسانی که نمی کردن از اوغلا خارجن ظاهرا فقط اون وضوح شوشند نیست اشکال ما سر وضوحش بوده لا اصل مطلب این نمیشه ایشون میگه و لا ببینید اگر قرار نباشه و قبول نباشه یعنی خبر رو فی نفسه حجت نمیدونه لمن العقل و من الار بدل خبر سره مانع ازلا وسوق به قوله اینجا مراد از وسوق علمه چون مفید علم نیست زن آوره اینجا مراد ایشان اینه ازلا وسوق به قوله ما از کردیم منصفانه اگه بخویم بررسی بکنیم، خب خبر سقه شا در 60 مورد 60% از موارد مفید اخبار سقه. مفید وسوق باشه از اینجا مرادش اینه که در تمام موارد نیست در تمام مورد نیست اما در ادعی از موارد هست. از لا اصوق به قوله و, و هاول معنا موجود و هنا این معنا که قبول اصحاب باشه اینجا هست ان الا اصحاب عملو بر روایت ها اولا کما عملو هناك اون جای دیگه ولو قیل فقدرت دو روایت کل وارد دو روایت کل واحد منهما فی بعض المواضع عذوال خب ما میبینیم خیلی روات علی بن نبی و عمار ثباتی مختصر عمار شاید ما در مجموعه رواکی که از اصحاب امه داری کسی بنظره عمار شذوز روایت نداشته باشه شاید مثلا خود من تو حالا تو جواهر شاید 20 مورد 40 مورد همه جواهرم نکنیم به مناسبت یکی دیدم شاید 20 مورد 30 مورد مثلا وا حالا روات عمار المعروف به کثرت شذوذ به شذوز داره که اینا تصدی علی نبی هم تو این طور نیست اما عمار خیلی نسبت شذوز بالایی داره من برهه توضیحی براش پیدا کردیم که این شاء وقتی متعرض میشه بله بله ولو بله قیل فقدرت دو روایت کل واحد منهما بعض الموازه قلنا کما رد و کما رو ببخشید اینجا رو ردو نبوده ردی هم چاپ شده روا هم چاپ شده دو فقط رو روایت کل واحد من هم افیبر. اول نه کم و روایت سرخی بعض موارد معللین به آن نه خبر و واحد گفته اینجا این معللین به آن نه خبر و واحد شد نظرش به بعضی موارد شیخ توصی باشه این از کاریم توصی انصافا درسته ما هم هنوز سر در نی اوردیم که ما بر شیخ توصی در تهذیب استفسار این کرده و اینکه خودشون ادعای اشماع کرد و مهمترین کسی که قائل به خود خبر مرموم شیخه در چند مورد در تخزیب میگه و اول ما فیاده الاخبار انها اخبار آها لا توفیده اید من عمل ها همین عبارت استادش تاید و مرتضایی بنام نمیفرمی باگر چی جور ایش این مطلویشون متعللینه به و خبر و واحده این راسته در عبارت خود و اله فعتبر کتب اصحاب فه تراها مملو من روایت علیه نمزکود اینه علیه ابن نبی حمزه و امار بله علا ان لم نره پس این هست ولم نره من فوقها اینا من رد روایت به خصوص این دو روایت رد نکردن قبول میکنم بله عمل المفتين منهم مفتی از فقه ها مرادشون در مقابل محدثین کسان یا به قول برمومه ابن ایدیسی و ذهب محصلون، یعنی به قول ما ها اصولی ها و عمل المفتین منهم به مضمون ها بعد و یعیده ها این هم شواهد هم میاره امن مقتضا الدلیل اتحاره و این ما ها رو ایلن ل لدلالت شر و حیث لا دلاله فلا تنجسه خب این که گفت رانه پس یک قبول اصحاب دو قرائن قرائن اساس تو رو گرفته بعد حالا تعجب شما شد بکنید بلا فاصله حالا فاصله پیدا بکنه و استدل شیخ الا تحریف الا نجاست صر مالای کل لحمو استدل و شیخ بر روایت یه راوی از عمار انوی عبدالله علیه السلام قال کل ما کل مایو کلهمو فلا بس به صوره حالا هذا ان مال به مفهوم بسات لا لا يجوز الوضوء به به برای شمع دقت بده بلا فاصله روایت عمار رو اور دقت کنی جواب ده بلا فاصله و صدر شیخ به این روات عمار و عمار. ول جواب از طعن و ضعف سنه شگفت فاصله نشود همینجایی که ایشون روایت عمار رو اینقدر شاند و قبول کردن و جواب بزاتن و بزات سنا و وجود المعارض معارزه سلیم فین نرآویله احمد بن الحسن بن علي انصامربن سعید انصصدربن صدره انصاما و جماعت و فتحیت آن فلا یوت به لحاظی روايته الفظ مال فظ و دیگه اسم مال فظ نبود مالی این دقت کنی بلا فصل خوف این نحوه کار بوده یعنی تعجباور نبوده ایشون همونجا، ایشون رواست امار رو قبول میکنه چون اصحاب قبول کرده بلا فاصله یه دیگری از امار میاره میگه نه این را با اینکه که اولا ایشان رحمت الله علیه محقق رضواندات علی. شان بحثای فهرستی رو در اون زمان نبوده ما این توضیح دادیم این سندی که ایشون گفت این مکرره در کتاب تحضیح و معظمش هم از طریق نوادر حکمه است محمد بن احمد این سند به عین تکرار میشه احمد بن حسن ان امر ابن امر بن سعید المصادقه بن صدقه اما احمد بن حسن ابن فضال فتحی اهل کوفه اون ستای دیگه فتحی و اهل مدائن این خبر کلا ولی نظام قرار از کردیم مرهوم وافی بعضی اوقات وقتی میخواد اختصارو اینطور میگه محمد بن احمد ان الفتحیه ان عبی عبدالله دیگه اون چارتره نمیاده این ان الفتحیه اختصارا ان الفتحیه عبدالله و این توضیحات شما از کردیم این معروف ترین نسخه کتاب اماره مثلا کتاب اماره چون بحث فهرسی نفهم ده. این معروف ترین نسخه کتاب اماره که در اختیار اصحاب ما بوده حالا حقیقت این نسخه وضع نسخه چیز رو به ما رسیده قابل قبولنه اون بحث متاسفانه ایشون مثلا البته اشکال دومی ایشان بهتر بود و به اندلالت و علاموزه النظام به دقیق کتاب برای از کتاب خطاب در اصطلاحشون مفهومه به اصطلاح مفهوم و خالفه مفهومه مفهوم منطور مفهومه و هو مفتول کنه اندل محققین و مخصوصا در اینجا ایشون نتونستن تو توضیح بدن که از اصولا این شبیه مفهوم لغبه اшон ظاهرا احتمالاً مفهوم شرط گرفتن چون داره کل ما یوک الہ نو فلا بعضه به این کل مبتداست شرط نیست بله در کتب ادب قاعده ای دارن که اگر وقتی یواد مبتدا معنای شرط رو بده در جواب در خبرش فا میاد چون فا در خبر نمیاد جای خبر جو فا نیست نمیگه این زیدون فقا ایمان نمیشه در خبر مبتدا فا وارد کرد مگر اینکه مبتدا متضمن معنای شرط باشه شرط نیست عدات شرط نیست مثل در من, یعت... غیر از من, یع... من از عدات شرط اللذی اللذی مبتلاست. من از منیت من از عدات شرط کل من یعطینی فلاحو در همان کل مبتداست جمله فلاحو در همان خبره اینجا میگن فادر جواب میاد به خاطر اینکه که مبتدا متزمن معنای شرطه شاید ایشون مرادش اینه که مفهوم مخالفت گرفتن ظاهرا هم مرادشون همین مفهوم به اصطلاح شرط باشه. لكن این مفهوم شرط نیست، مفهوم ورس هم نیست، این مفهوم لغوی استطلاح. خیلی حال برای واسه بحث فقهی و لغویش نشید خب تا اینجا روشن رو شد که احتمالاً تأثیر گذاره اساسی یه کسان هر چه جای دیگه من پیدا کردم، دیگه نمیخواد بخونیم که ایشان نه اینجاش لطیفیش این بود که بلا فاصله، یعنی هیچ فاصله ای نشود باز حدیث را ذکر کردنش. به خاطر فتاییدن. این هم به این احتمال, احتمال دومی که داده میشه در کلمات و هست در کلمات عدیشون همون راه فهرستیست که ما گفتیم یعنی بعدی ها اصحاب متفتن شدن که قدمای اصحاب ما بحثشون سر سند نبوده مثل احل سند اینا رو مسادر حساب میکردن شاید در کتاب اگر دیده باشین شرح منلای حضور الفقیه اینام رو وزه المتقی مجلسی اعلی پدر مجلسی پدر رضوان الله تعالی علی ایشون رها شانقری هستن ایشون چند جا مثلا میگه وروا ها به سند فی سهل و هو به ببینید خب سهل بن زیاد چه چیزیه که طبق نقلی که مرحوم نجاشی کرده از احمد اشعری شهادت علیه و والقول و اخرجهم من قوم یعنی درست نیست حالا این شهادت ایشون به معنی دیگری داره که این جلگ توضیح می دیم که و اخرج من قب لیکن مرحوم مجلسی بخواد اشاره بکنه میگه نگاه نفتی این سهل رو سهل طریقه مثلا خیلی جا که سهل هست ان الوشا این در حقیقت مرحوم کلینی از کتاب وشا نراد کرده فرص کنم مثلا یک کتاب وسایل چاپ اینو دولو چاپ و قلو قدیم چاپ قدیمون بزرگا. خب ممکن است شما از این کتاب نقل بکنیم و بعدها بگیم کتاب موارد اشتباه داره میگید بله من موارد اشتباه شو پیگیری کردم اون جایی که درسته کتاب پیش من موجود از این نقل کردم یعنی این صحبت هست که نقل مرحوم کلینی در حقیقت از سهل نیست از اون کتاب وشایه مرحوم مجلسی تریر کرده و سهل زیاد تریخون این تریخون معناش اینه این ما اصطلاحش عوض کردیم به جنگشون گفتیم بحث فهرستیه بحث فهرستی نمیاد روی راوی خیلی مانور بده چرا حساب میکنه اما میاد مقایسه نسخه و کتاب رو هم میکنه رو روایت هم حساب میکنه رو معلف هم حساب میکنه حساب رو فقط رو معلف می. رو کتاب چاپهای های کتاب رو این هم حساب میکنه حالا من یه توضیح مختصر اینجا بدم چون محل هست. ببینید ما دو نفر داریم که راجع به اونها مثل سحر که معاصر ایشان شاده به کذب داره حدود البته این حدود که میگن با کتاب روزه حدود نه مورد میگن در کافی از این سحر حدیث حدود داره با اینکه که معاصر شاده به کذب ایشان داره این یک محمد ابن علی کوفی ابو سمینه یا محمد ابن علی سیرفی چند بار اسمشو بردیم در باره ایشون نمشتن که اش حرار کذابی که معروف از فضل نه رو شده باقتن اینکه این که تا فرض از فرض شده که الکرزابون المشهورون خمسه یکیش رو محمد النعلی گرفته گته به اشهرها هم محمد النعلی عبو سمین خب این شخص در قم آمد مدتی هم مهمان خود احمد اشهری بود که رئیس هم بود و بیرونم می کند افرادو مهمان این من که میگم احمد اشعری چون در خیلی از این کتاب‌های فارسی فارسی غیر فارسی عربی و معاصر این غیر معاصر نوشتن دعوه‌قوم قومین بوده که افراد رو از اون به خاطر قلوب بیرون میکره. این درست نیست ثابت نیست احمد چون سلطه سیاسی داشته احمد اشعری صاحب و سلطان بوده روی سلطه سیاسی بلا و مسائل عقایدی صرف و حدیث و از قلاص باشه بیرون نمی‌کردند این یک دو احتمالا ادبه از این قلاتی که به عنوان قلوب از قوم بیرون کردن احتمالا مشکلات سیاسی داشتن چون ایشون زعیم سیاسی قوم بودن از طرف آلوب و که در ری بودن ایشون از طرف اونها در قوم حاکم بود احتمالا نه آلوب و نه حاکم خود ری احتمالا مشکلات سیاسی بوده اینه دیگه یه توضیحاتی سابقا را چید به تفکرات خط قلوب دادیم که جاش اینجا نیست خیلی قصه معلوم نیست که رسرسه یه فقط گلوب باشه و یا مثلا قومیا بیرون می‌کردن نه این تابع همون سلطه سیاسی که ایشان داشته حالا عرض کنیم قوم در اساس کومه بوده نه خیمه و زندگی مردم در اینجا به خاطر همین آبی که هست و زندگی چوپانی بوده حالت شهری نداشته مثلا قلعه و دژی و مثلا خندقی و تسهیلاتی اینا نداشته حالا که چوپان بوده گروه گروه بودن، ای گروه اینجا. یه گروه هونجور در کومه کومه بستاره اشهایده که بقیم میان در حد سال 90 یا هشتار یا 92 دو زمان حجاجه میوسف سقفی اینا یواشه باشه ها تر شهرگی داده شده اون رو جمعه شهریت بشنیدن و هم متصل بکنن در شهر میشه چون دست خود اینها شهر شد این منشهر شد که حاکم سیاسی هم اینا باشن مثلا مسئول شهر و حاکم شهر و فرماندار شهر خود البته در اون زن به اشعره عرب میگوزن این عرب ها چون یونی بودن اینا چون جده دوازه هامشونه ها وقتی به دنیا آمده سائب بنوزم اسمش اسمش سائب بودشن رفی بدنش پرمو بود اشعر میگفتن اشعر در لغت عرب مردی که بدنش پرمو ازا منصوبین به این شخص اشعری شدن که یکیش هم عبونسه اشعری معروفه عبونسه از اینا نیست که اینه خورمان اینا سه سا ب شرح خواست خودشون دارد لذا اشائره مخصوصا این این باند این. یعنی احمد پسر محمد پسر ایسا پسر سعد خود ظاهرا سعد و بعد پسرش ایسا و بعد پسرش محمد و بعد پسرش احمد و ظاهرا اینها به تسرسل حکام قوم بودن حکام از سیاسی قوم دست این بود این صاحب سلطان به این مناسبه نه این که حالا خیال بکنی مثلا به اون معنی خواست نه چون شهریت قوم دست اینها شد طبیعتا به اصطلاح اداره سیاسی قم دست اینها شد توی اینها بلا اشکال مثلا محمد مثلا عیسی بن سعد گفتم عیسی بن عبدالله اون جد عبدالله صنز برادر سرد مثلا عیسی احتمالاً اولین کسی است از این خاندان که به مدینه به خدمت امام رسیده چون عربی هم برد بوده اینا مثلا تشرفشون خدمت امام کلی راحت بود و زواهر امرش هم نشون میده که احتمالاً سنی باشه خود عیسی اون تشیع تشیع روشن نیست احتمالاً سنی بوده که به اهل بخت خوشبیت بوده اعتقاد داشته به امام صادق و اونان یک مرد بزرگ از اهل بخت اما مثل نوه خودش احمد شیعه مصطلح باشه احتمالاً نباشه حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم چون اینجا نیست کیف و ماکان اینه که میگم قومی ها بیرون میکردن این ثابت نیست این طرز بیاساسی بله در قم روی مذاهب فاصله حساس بودن من این توضیح دادم ما از ارباب مذاهب فاصله شیعه سنی چون گاگهی از طرف حکومت می آمدن ما هیچ داریم موطوق که نمیخوام اون اما از مذاهب فاصله شیعه فقط از خط قلوب تو قم داریم مثلا ما زیدی در قوم نداریم فتحی در قوم نداریم ناووسی و کیسانی اگه وجود داشت تو قوم نداریم واقفی تو قوم نداریم خیلی هم عجیبه واقفیه فتحیه هیچ کدونشون قوم نامادن زیدی اسماعیلی این مذاهب انحرافی شیعه بله قولات تو قوم بودن قبول، قابل قبول. به ادهی از معلفین بزرگشم تو قوم بودن مثل سهل مزیاد و مثل رو هم احمد بیرون کرد. احمد برقی رام احمد بیرون کرد ای محمد بن علی هم کلا اسمش برگی شو ایشون هم به عنوان قلو از خوم بیرون کرد یه چند نفری رو ایشون به خاطر سلطه سیاسی به کار می‌بردند و به عنوان این که از خط قلو هستن، یه توضیحاتی می‌خوام امروز نمی‌خواستم این را وارد این بحث بشم چون طولا نیست. الا ایهالد محمد بن علی سیرفی رو ایشون از قوم بیرون می‌کنه اما روایات ایشون در کتاب ما هست. در کافی هم هست. مخصوصا تو محاسن برقی و یه مقدارش هم تو کافی از طریق برقی آمده تو کافی امده یه ربایات محمد بن علی کوفی سیرفی چون خود احمد برقی هم متهم بود که از زعاف نقل میکنه برای ایشون هم از قوم بیرون کرده دقیق کرده خود احمد برقی رو هم از قوم بیرون که در ساقت جرات خودش بحثی نیست ادعا شده که از ضعف مثل این شخص محمد بن علی نقل خب من دو تا مثال بزنم خدمتتون که روشن بشه ما از الگ روایات سهل بن زیاد یا روایات همین سیرتی عمل شده بشه اینه ای که میگه طریق مرووم مجلس پدر اشاره به این نکته از خوب دقت بکنید این اینا رو ما اصولا در میراث های شیعه دو جور راوی داریم یکی کسی که از امام روایت می‌کنه به اصطلاح ما میگیم تولید علم یکی اینکه از امام نیست از واسطه است بحث اهل سنت این یک جورش پیش ما خیلی از این افراد به صورت راوی کتابن. یعنی کتاب خارج از روایت اینها وجود داره متوجه این طور نیست که کتاب متوقف به روایت اینها باشه مثلا بله یک انسان ضعیف گفت خدمت امام ساده بودم این طور فرمودند شما این شخصه نمیشنسیم یا ضعیفه راهی به امام ساده جز حضر ضعیف نداریم خب دقت کردیم برای اینه که میان این رو محاسبه میکنن اما وقتی کسی راوی کتاب بود خود دقت کنیم در این جایه کسی راوی کتاب بود اون کتاب خارج از روایت وجود داره خارج از خود این روایت شخصیت داره وجود داره میتونی احراز بکنیم حالا کنید شما در یک کتابی از اظوار برون که یک مستشرپانه خلیط هم حسابش بکنید یا نکنیم. مثلا 5 دالار از کافی نار کرده شما این درست نکنه. خب از اون کتاب نو کا در کافی اینطور آم بده. این منافع نداره که مؤلف به اصطلاح چرا مشکل داشته باشید؟ چرا به خاطر اینکه این کتاب یک وجود استقلالی داره جدای از روایت ما دسترسی بهش داریم ان کردیم. ما چون کلینی مفروض اینه که کاملا است قرص از کلم دیروز دیروز آن پیرم درس اول بوده دوم از کلم مرحوم نجاشی تعبیر راجع به کلین داره من جدیگه نیدم نیدونه اگه کسی دیگه گفته باشه تحبیرش اینه که او و ناصف حدیث و اثبت مهم فی خیلی بالایی است. خب وقتی کلینی یک حدیثی رو که دینه میخواد نقل کنه میبینه سهل ابن زیاد از وشا نقل کرده خود دقت بکنید این معناش این است که ایشون کتاب وشا رو دیده حالا تصادفا کتاب وشا نسخه احمدن در قم بوده خود این کتاب وشا مثلا تحلبن زیاد کتاب حسن محبوب نقل کرد تصادفا حسن محبوب نسخه کتاب حسن هم, هم توسط ابراین حاشم به با آمده هم تاسته احمد عشق برقیقه پس این کتاب ها موجود بوده ما اگر ببینیم مرحوم کلینی نقل میکنه اینا بیشتر به خاطر اینکه نسخه در اختیار شده به خاطر دقت و دقت در مطلب اما میدونسته که این در کتاب ثابته حکره رو مخصوص اثبات و اصحاب هم عمل کردند خب دقت بکنید اینا می اومد که از این عمل اصحاب روشن شد ما اسمش رو بحث فهرستی اینا فهمیدن اصحاب ما در قدمای اصحاب بحث ها پیشون رجالی صرف نبود و همین هم درسته خب یه دفعه شخصیست مثل من با مثال جابر ابن یدید جوفی که خدمت امام رفته شما نمیدونی جابر سغرس یا نم. مفضل ابن آمر مثلا فرض کنیم دونید سغرس خب این یک مشکل داره یه دفعه این که مثل محمد ابن علی کوفی کذاب بناد فرض اشترال کذابی لیکن ایشون کاری نکرده ایشون از کتاب وشی نقل کرده و یه خوزی من بدم چون این البته کراهن گفتم برای که حالت ارتکازی پیدا بشه که هر وقت حدیثی رو دیدیم ذهن شما انتقال پیدا کنه ارز کردم تولید علم پیش ماشیه در کوفه است. بعدش هم در بغداده در اسنا مکتب بغداد مکتب کوفه و بغداد اول منتقل شد به قوم. چقدر می مکتب قوم تذکیل شد که از کمه از سالهای تا مده چارسر این ملانا قطعه میشیم سره اشتاریه چون ما بعد از صدوق کسی تأثیر گذار تو قوم نمیدونیم صدوق هم وفاده سره اشتار ما میگیم نسل بعد از صدوق تا یه این مکتب قم و خوب دقت بکنیم وقت این انتقال میراست از کوفه به قوم به دو جوره یک کسانی که ساکن کوفه بودن به قوم آمدن دو کسانی که ساکن و بودن رفتن کوفه آوردن قوم، خب؟ فرق نمی کنیم از اونجا آمده وقت ما مثلا نمی با مثال بخواهم براتون بذاریم کسانی که ساکن کوفه بودن آمدن قب خب. یکیش ابراهیم نهاشمه اولشم ایشونه پدر علی ابن ابراهیم ما اونه که ما میدونیم که جایی گفته نشده ظاهرا ایشان ناقل میراز ها بوده کماه هو موجود ظاهرا اینطور باشه هنوز برای ما روشن نیست که ایشان دخل و تصرف تو میراسا کرده خوب این نقطه زریفیه یعنی مثل چاپونه بوده کتاب ها رو برداشت نوردقوم پرش کرده ظاهر شرحال ایشان اینطوره یکی دیگه از کسانی که آورده قوم محمد ابن خالد برقیه پدر برقی معروف ایشان یک مقداری قلط قلود داره یک مقداری یه رویان زعفا و مراسیل و نظام در حقش گفتن کاران ضعیف هم فلنده سه رصفی مثلا میتونیم بگیم میراسی که ایشون آورده درجه دوست دقت کرد. یکی از کسانی که باز از قوم از بغد از کوفه به قوم میراث آورده، همین محمد ابن علیه سیده ایشان کوفه هست اشان یه مقداری میراث ورده به قم من هم براتون سه تا مثال زدم که روشن بشه یکی ابراهیم نهاشه که این ظاهرا میراثش نقیقه ظاهرا نقاوت میراث داره اما دقت بکنید ارزیابی و تصحیح و تنقیح نکرده چون دقت می‌کنم شما اصلا ممکن بوده 20 تا کتاب در کوفه بوده ورده قم این 20 تا هر کدوم مثلا 350 حدیث بوده 900 تا حدیث بوده همونطور که بوده ورده قم نمی اومده بگه این کتاب 350 تا حدیث 50 تا حدیثش مشکل داره من حذف میکنم ظاهرا اصلا چون کسی ننوشته از مشایخ هم نشینه این شخصی خودونه روش فکر بشه خیلی مفیده چون خیلی آثار داره توجه نشه که علمای ما رو آثاریم ظاهرا ایشان کما نقل او کما وجده و سقم است سنن تعریف بعده به نحوه تحدیس بوده بلا اشکام اون که بله این عمل کلام به ذهن من میاد که ابراهیم نهاشین با مساغتش و با جلات شعنش و اولین شخصی همه از که در قم کتاب رو آورده ظاهرش به ذهن من میاد که س... قصص و سمین رو با هم آورده نه قصص و سمین هرچی کتاب فرسان جمیل بوده و ازش رو من با مثال هرچی کتاب حسن محبوب بوده و ازش رو آورده ظاهرش اینطور. اما محمد بن خالد یه مقداری تساهل داره دقت نداره کار ضعیفان فله حدیث اون شؤونه تهذیص رو به دقت اما توی نداره دروغ نمیگه وقت محمد بن علی سیرفیده که سه نفر من بعضو مثال زدم که اینا از کوفه اومدن به قم آثار کوفه رو به قم آوردن این آقا در شأنش گفته شده اشهر الکذابه حسین بود اونی که میراثش خرابی داره اینه اون دو تا اولی خوبه دوباره متوسط سبومی خراب این سومی که محمد ابن علی سیرتی باشه خراب وقت چون میراس ها به قوم آمده و لذا مثلا کرارن میبینیم مرحوم کلی میگه ابراهیم حاشم وسر هر دوشون از حسن من یا میگه احمد اشعری وسر هر دوشون از وحشا دقیقی علی منذر میخوام ابرالین حاشم و محمد ابن خالد برقی اشتواج هم هر دوشون مثلا از, حسن، از ابن عبی اومد مثلا اینو باید یکی که بررسی بشه یه صحبت اون هم داره اون صحبتش هاش خیلی پلال نیست و بحث و اصول که اینش رو این راجب اینه و اما کسانی که از قوم به کوف رفت کسانی که از قوم دو تا شخصیت تو اینا نصف زن معروفن شخصیت دیگه هم داریم ا یکی از جناب آقای احمد اشعریه که فوق العاده دقیق فوق العاده اصلا احتمال ما میدیم ایشون غیر از اینکه ناقل بوده ارزیابی هم کرده یعنی ایشون فرقش با ائونه هاشون مینه به احتمال قوی در قوم که دست به تصحیح و تنقیه احادیث دادن اولین نشون خود همین احمده و واقعا هم شخصیت بزرگواری شده اصلا نگقولشون شخصیت سیاسی بوده ثقل سیاسی قم واسشون بوده انصافا در معرفت الحدیث و شناخت حدیث و نسخه و روایاتی که داره و اسانیدی که داره خیلی عالیه انصافا نمیشه کار کرد اما مثلا به نظر من اگه مقایسش بکنیم با فضل شازان که ایشون از نیشابور رفته به کوفه و بغداد به, به نظر ما میاد فضل تر باشه و علمی تر باشه و به نظر میاد احمد دقیقه لیکن باز به نقل نزدیکتره شاید فضل به جنبه اقلانی نزدیکتر باشه به خلاف احمد حالا من وارد این بحث شدیم شده بشم فقط نمونه یکی دیگه از افرادی که باز از قوم رفته به کوفه و آورده سهله اصلا رو سنیشان در که جایگاه سهل و جایگاه اون سیرفی سیرفی از کوفه به قوم آورده بود سهل از قوم رفته اون کسی که در سهل بزرگتین اشکال رو وارد کرده احمده احمد که انده ما مخواد بگید این دروغ میگه این دروغ هم از دروغ نمیگه مبنای حدیثی بوده اشتباه اینه احمد دو... اشتباه نکرده آن دیگه بس کلام احمد رو احمد مخواد بگید ما رفتیم کوفه سهلم بود. سهلم بود. سهلم بود سهلم بود یه کتاب از وشا از تو بازار خرید به اصطلاح ما آمد گابه ان سهله به زیاد ان وشا هم اما من رفتم نه تحدیز کردم کتاب رو برای ش این کهز در اینجا نه کهز به مصطلحه اشتباه نشه. آقایون اصلا ملتفه نشن. ما که این کذابه. ما در این کذاب بیان. 900 مورد فقط کافی نه این کهز مراد اینه. که استلاحاً ما بهش نمیگیم کهز. میگیم چی؟ میگیم زعیفون فیل حدیث. مبانی حدیثی ضعیفه چون این در قدم بوده. سنی هم داشتن. ما هم داشتیم. نسبتش هم زیاد نیست حالا مثلا تو سنیه هم ممکنه فقط 5 درصد توی ماه ممکن ممکنه 10 در درصد و اون این که اگر میگانیم کتاب مال شخصی هست ولو از خود شخص نگیرید میتونیم به نهوه انه نقل بکنیم من می‌گم این کتاب مال وشا رفتن از بزار خیلیدم قطران مالیشونه میتونم بگم انه وشا نمیگم حد دستانی میگم انه وشا چون یک مبنای بوده که عنعنه اعم از اتصال است، صلاح هم گفته میگفته. یه بحث در درایات الحدیث بوده که عنعنه مساوی با اتصال یا اعم از اتصال. اینو میگفتن عنعنه اعم از اتصال، درقت کرده. این مشکل نداره که سن ما احمد اش از اینجا در درو گفت، میگه وشا در و دروخه. چون خود ایشون رفته کوفه. ایشون احمد بن مثلا کتاب اصلا محوهر احمد احمد سهل بن زياد کتاب <risque> و شا رو هم احمد ورده هم سحلیف نزیار. کتاب و رو هم احمد ورده هم سهل نزیار. دقیق که این وضع محیق ما در حقیقت خوب دقت بکنید مرحوم کلینی رزوان این اینکه ایشون مرحوم آیه مجلسی یک کلمه گفته و سحلیف نزیار تریخان یک کلمه این رو ما برای شما باز کردیم. <تصحیح> اسم این رو ما بگذاشیم مسلک فهرستی مسلک فهرستی نمیاد روی سن حساب بکنه روی کتاب حساب میکنه مثلا کتاب حساب محبوب کتاب بلفیر هم همینطوره همینجوره که من میگم فرضی هم نیست کتاب حساب محبوب هست کتاب بزنطی هست کتاب وحشا هست آثار وحشا چهار ما کتابش باشه یا غیره آثار وحشا هست اینا رو هم سهل نمی میکنم احمد پس معلوم شد ما مقاره نکنیم برای شما یکی مثل اون سیرفی مقابلش با ابراهیم نوشه یکی مثل احمد اچری مقابلش با سهله بن زیاد اینا میواده میگوتن چون اینها بزرگوار بودن و جلیل القدر بودن خوب دقت کنی و چون کتاب وجود داشته حالا سهله نزیاد زیاد خیلی خوب ضعیف معناش ضعیف بسیار از خط و ایشون کتاب نه کرده کلینی اون نسخه رو تاکید داره که از اون نعم میکنه. داد بگوی چرا؟ چون لعلم وان حديثكم هذا دين ان فانظروا اما تاخذون دينكم؟ اینا با حدیث که قصه امیر ارسان نامدار نبوده که این حجت الهی بوده برای awal تاریخ بوده. صحبت این نبوده که کتاب شعر تحریم بکنن که بیام بگیم تساهل میکردن. درست می پس بنابر این به احتمال بسیار زیاد بسیار زیاد و این تفکر احتمالا بعد از اللہ مثل این تفکر برای اصلا گدستان دو قرد دیگه رسمن بلکه که دو قرد نمیشتی یک کم بیشتر رسما از طرف اخباری ها پیگیری شد اخباری ها اتجاه بحث را عوض کردن گفتن آه این روایاتی که موجود همش از مسادر خوب قرائن بوده شواهد بوده همون هر که محقق فرموده بود اینا گندش کردن اینا همه شواهد داشته همه قرائن داشته همه این کتابا حساب شده بوده این کتاب ها درست بوده بردن بحث فهرستی البته اخباری ما تعبیر فهرستی ندارن تعبیر از من وقتی تو عباراتشون تعمل میکنیم تأکیدشون رو کتبه ما ارز کردیم اگر تأکید رو کتاب بود میشه فهرستی رو راوی بود میشه رجالی مجموعه بحث که چیه قبول میکنیم اسم روشون تحلیل این تعبیر تحلیل رجالی اهل سنت تحلیل رجالی کرده اهل شیعه بیشتری تحلیلشون فهرستیه نه اینکه تحلیل رجال ندارن اما بیشتر تحلیلشون رو فهرستی چه نکته تاریخی بود زخم تموشو دادن یه دقیقه فرض من عرض کردم اهل سنت وقتی که افتادن بنوشتن حدیث صلا 150 سال با پیغمبر فاصله داشتن 140 سال فاصله داشتن از صحابه کتاب نداشتن مجبور شدن رو روبارت حساب بکنن رایی غیر نبود اما شیعه مثل مرحوم شیخ توسیر مثل مرحوم فلسون شیخ کلینی مثل مرحوم صدوق مثل مرحوم شیخ مفید بزرگان شیعه وقتی که مشغول تمحیز و به اصطلاح تدوین اینها شدن کتابهای صحابه موجود بود این با بایم جوهرن پرخ کرد <تص> <تص> یعنی کتاب حریز بود کتاب. من الان اسکلم چرا این کتاب ماویه بن عمار رو یک آقایم استخراج که فنی نیست این کتاب ماویه بن عمار رو به اصول فنی استخراج میشه شو تعجب بکنید که از اصحاب وام صادره و حج جزیشان نوشته وام فرمودن نوشته الان فقط روایات ماویه بن عمار رو یک تنقیح و تصحیح جمع آوری بشه تقریبا میشه این دست یک حاجی بدین که حج داره الان تقریبا داره همین کتاب ماویه بن عمار کتاب الحج ماویه همیه الان هم بدی خیلی عجیبه تقریبا نبدور من آن یعنی یک حاجیم تو بشه عمل میکنه اونی که اصحاب ما داشتن این بود دیگه این احتیاج پیدا نکردن بین خودشون و بین امام صادق تمام سنده حساب بکنن حیثه بهش نیشون کافیره که نوشتن چون کتاب مابلت عمار معروف بود کتاب حریز معروف بود کتاب جمیل معروف بود کتاب ابن عزین از اون طرف هم کتاب ابن, ابن عبی عمر ابن عبی عمر هم فوق العاده جای و قدر و نقاد حدیث حدیث شناسه قدرته کتاب های ابن عبی عمر فوق العاده. که این از کلیم میراسای بغداد اوله مثلا ما در آثار غومی ها و بغدادی های بعدی ممنوع و از آ این نکته ای شد که اصحاب ما بعد از علامه آمدن گفتن اون راه علامه کافی نیست چون راه علامه تحلیل رجالی بود تحلیل رجالی به جایی به درد میخواد که ما اصلی اصلیمون نباشه مثل سنیا من درست هم هست علامه در قرن هفتم هم مثل سنیا تو قرن دومه. دو یعنی علامه در قرن هشتم دیگه کتاب اصحاب موجود نبود مسادر اولیه موجود نبود لذا بعید نبود که علامه برگرده به چی؟ برگرده به رجال اما قدمای از اصحاب... لذا این مطلب به این اصحاب ما جا افتاد که قدما از این تحلیل جالی صرفی که علامه استفاده نکردن به قول مرحوم معتبر داییشون قرائن بوده قبول اصحاب نکات دیگری داشته قرائن دیگری موجود بوده روی اونها اعتماد کرده البته مرحوم محقق قرائن اصل میگیره خبر رو موکد میگیره اینا ظاهرا خبری که غیر حجت بوده با قرائن حجت میشه میشه دلیل لفظی و اگرم قرائن نبوده ساقطش میکردن عمل نمیکردن دنبال وجوه دیگری میرفتن به ذهن ما میادی که از مکاتب اساسی که منشأ شد اینه یکی دو تا احتمال که روز تمام میشه غالبا بعد از ده محرم یکی دوسونکسی با تماش بکن تا این بس